اسلی نویسنده اثر کوچک و پرقدرت منصور داستان زندگی فردریش پروسی هنرمند پرشکیبی که با پشتکار و استقامت رمان آکنده از چهره‌های گوناگون این پرده پر از نقش و نگار را به نام مایا پرداخته بود که سرگزشت های بسیاری را در سایه اندیشه گرد آورده بود خالق داستان محتوا با عنوان بخت برگشته که نمونه از ازم استوار، ازمی فراسوی معرفت را فراروی نسل جوان پرسپاس می نهات. و بالاخره برای آنکه از همه آثار قلم او در دوران بلوغ هنری او به اختصار یاد کرده باشیم معلف رساله پرشور درباره خرد و هنر که قدرت نظم بخشی و بیان جدلیش منتقدان صاحب نظر راوا واداشت، بلا فاصله در کنار اثر تحلیلی شیلر درباره ادبیات ساده نگر و احساسگرا قرارش دهند یعنی گوستاو آشنباخ در شهر کوچکی از استان سلزی به دنیا آمد. پدرش کارمند عالی رتبه دادگستری بود و اجدادش افسر ارتش، قاضی یا از صاحب منصبان اداری بودند. همه مردانی که عمری را در ورع و درستکاری به خدمت پادشاه و مملکت سپری کرده بودند. در میان آنان یکی کشیشی نمایندگی روحانیت را در تبار بر عهده گرفته بود و در نسل پیش مادر نویسنده که دختر رهبر ارکستری از مردم بومن بود تب گرم و پرشورتر را در وجود خود به نمایش گذاشته بود آشنباخ نیز آثار نژاد بیگانه را در چهره خود از همین زن گرفته بود و از آمیختن حس مراقبت و هوشیاری خدمتگارانه به سفاتی آتشینتر و تیروتارتر هنرمندی پدید آمد که گوستاو آشنباخ نام گرفت از آنجا که تمام وجودش به شهرت وابسته بود اگر هم در اصل هنرمندی زود رس نبود به نیروی بیان قاطعانه و لحن شخصی خاصی که از آن به گوش میخورد، از همان آغاز قابلیت و استادی زودرسی در جلب انظار از خود نشان داد. هنوز به درستی پا از دبیرستان بیرون نگذاشته آوازه ای به هم زده بود. ده سال بعد دیگر آموخته بود که چگونه از پشت میز تحریرش نقش خود را ایفا کند کار گسترش آوازش را خود به دست گیرد و پاسخ پرمعنی و تفقد خود را در یک جمله نامش به که که میبایست کوتاه باشد چون نویسنده موفق و قابل اعتماد همگانی وظایف بسیاری بر عهده دارد و در چهل و چهار سالگی هر روز خسته از هیجانات و فشارهای کار اصلیش میبایست کار پاسخ دسته این نامه را که مهر و نشان ممالک راغیه عالم را بر خود داشتند، فیصله دهد. هنرش که از ابتزال به همان اندازه به دور بود که از عجایب دور از ذهن ذاتا این توانایی را داشت که باور توده وسیع خانندگان را همچنان که توجه برگزیدگان را نیز جلب کند و به از همان دوران جوانی از همه به خلاقیت آن هم خلاقیتی خارقلاده متعهد گشته هرگز لذت فراغت خاطر و بیخیالی جوانان را نچشیده بود و چون یک بار در حدود سی و پنج سالگی در وین بیمار شد ناظری رند درباره او در جمع گفت ببینید آشنباخ همیشه در زندگیش اینطور به سر برده گوینده انگشتان دست چپش را به صورت مشتی گره کرد و هرگز اینطور نبوده و دستش را گشوده به راحتی از پشت صندلی به پایین آویخت. همین طور بود. و از اراده اوستوار او, او همین و بس که تنش کمتر از هر چیزی از بنیه نیرومند برخوردار بود و برای چیزی که ساخته نشده بود تلاش مدام بود. همان که در واقع رسالتش بدان فرامی‌خواندهش در سنین کودکی از سوی پزشکان از رفتن به مدرسه من و به درس سرخانه ترغیب شده بود. تنها و بیدوست بزرگ شده بود و با این همه می بایست به موقع دریابد که او به دستهای تعلق دارد که کمبودشان نه در قریحه و استعداد بلکه در آمادگی جسمانی است. که غریحه برای بارور شدن بدان نیازمند است هنرمندانی که همواره در جوانی شاه کارشان را میآفرینند و به ندرت تا سنین بالا دوام میآورند ولی تکیه کلام او استقامت بود او در رمان فریدریش جز به چشم تفسیر به این شعار خود نمینگی که مفهوم فضیلت فضیلت کوشایی دردمندانه را در خود نهفته داشت نیز با تمام وجود آرزو می کرد عمر طولانی داشته باشد چه او را از دیرباز عقیده بر آن بود که تنها هنرمندی را میتوان بزرگ جامع و به راستی شایسته احترام خواند که هنرش را این ویژگی داده باشند که در همه مراحل زندگی بشری او را ثمر به آورد پس از آنجا که بار وظایفی را که غریحه بر عهده نهاده بود مرشانه های زریفی می کشید و راه درازی هم در پیش داشت بیش از پیش به خیش تنداری نیاز داشت که خوشبختانه آن را از اجداد پدری به عرص برده بود در چهل و در پنجاه سالگی چنان که در سن و سالی نیز که دیگران ریخت و پاش بسیار می کنند و انان کار را به دست احساسات می سپارند. و از انجام کارهای بزرگ تفری می روند، گاه روز خود را با ریختن آب سرد بر سینه و پشت آغاز می کرد. دو سه شمع بلند در شمدانهای ای بالای سر دست نوشته خود قرار داده، نیروی را که از خواب به دست آورده بود، طی دوسه ساعت تلاش بی امان و جانفرسا در پیشگاه هنر قربانی. این قابل چشم پوشی بود و در واقع به معنی پیروزی قدرت اراده نیز به حساب می آمد که پاری بی اطلاع دنیای مایا یعنی نوشته های را که زندگی قهرمانانه فردریش در آن به نمایش گذاشته می شود محصول زورورزی و رود درازی خانده بودند در حالی که برعکس اینها از خردکاری های روزانه پدید آمده از صدها و صدها الهام جداگانه اثری بزرگ به دست داده بودند و تنها به این خاطر این چونین کامل و در هر صفحه و هر سطرشان چونین ممتاز بودند که خالقشان با ازم و استقامتی به پابرجایی ازمان که وطنش را فتح کرده بود در طول سالها تحت کشش تنها همین یک اثر آورده بهترین و گرانبارترین اوقاتش را آن کرده بود برای آن که محصول هنری گرانقدری آنن تأثیر وسیع عمیقی از خود به گذارد باید ارتباط بلکه توافقی پنهانی میان سرنوشت شخصی آفرینندهش و سرنوشت جمعی نسل معاصر او وجود داشته باشد مردم نمیدانند که چرا اثری هنری را آوازه بلند میبخشند. آنها که از شناخت هنری بس به دورند به گمان خود صدها امتیاز در آن می‌یابند تا هواخواهی خود را توجیه کنند ولی دلیل واقعی ستایشان ها قابل سنجش نیست چون جنبه عاطفی دارد. آشنباخ یک بار در جایی که چندان به چشم نمیخورد به سراحت گفته بود که تقریبا هر آنچه بزرگه است، بزرگیش از ستیز با موانع، ستیز با غم و درد، فقر، تنهایی، ضعف جسمانی، گمراهی به تباهی، هیجانات روحی و هزاران مشکل دیگر به وجود آمده است. ولی این تنها یک نظریه نبود. این یک تجربه بود. این چکیده زندگی و کار او بود. کلید آثار او بود. و چه عجب که شخصیت و حرکات ظاهری چهره‌های قریب او نیز در این سخن خلاصه. درباره قهرمان او، یعنی آن نمونه نوعی که قهرمانهای او همه چهرههای متفاوتی از او بودند و نویسنده همواره همو را در نظر داشت، در وصف این قهرمان جدید، تحلیلگری یار همان ابتدا نوشت، او مردانگی را به نمایش میگذارد، جوانانه و روشن که با قروری شرمگین دندانها را به هم می و بی حرکت بر جایش می ایستد در حالی که شمشیرها و نیزه در تنش فرو میشوند. این سخن با وجود حالت انفعالی که توصیف می کرد سخن زیبا، نکت بینانه و درستی بود چون این تنها بردباری نیست که در برابر سرنوشت وقار خود را حفظ کنند و در عین درد و رنج قیافه دلپسندی به خود بگیرند این خود اقدامی مثبت و توفیقی بزرگ به حساب می آید و تصویر سباستیان تمثیل زیبایی است اگر نه از هنر به طور کلی به یقین از هنری که در اینجا مطرح است اگر انسان در دنیایی که حکایتش رفت دقیق می شد، خیشتنداری پرشکوهی را می دید که تا لحظه آخر، تحلیل درونی و فساد جسمانی خود را از چشم عالم پنهان می کند. زشتی زرد رنگ و رنجورانی که توان آن دارد که از حرارت بیپرتو خود شعله تابناک بپا کرده، حاکمیت خود را بر ملک زیبایی برقرار. ناتوانی پرید رنگی که از اعماق آتشین زوق و غریه نیروی آن بیرون میکشد که ملتی دلیر را در پای صلیب در پیشگاه خود به خاکف کند وقار دلپسند در خدمت صورت بیمحتوی زندگی ناراست و خطرناک شیفتگی توانفرسای هنرمند این فریبکار مادرزاد انسان اگر این سرنوشت و بسیاری چون این را در نظر می آورد، می توانست تردید کند که اساساً قهرمانی دیگری جز زعف وجود داشته باشد. و به هر حال کدام قهرمانی می توانست به زمان نزدیک تر باشد؟ گستاو آشنباخ داستان کسانی را می سرود که در حال از پای افتادن به کار خود ادامه می دهند آنها که زیر سنگینی بار کار تن کوفته را همچنان بر سر پا نگه داشتند او داستان سرای همه بندگان کارآفرینش بود آنها با جسم ضعیف و امکانات ناچیز به نیروی شور ارادی و با هوشیاری و خودگردانی دست کم تا مدتی نشانه از عظمت از خود به ظهور می رسانند مردمانی از این دست بسیارند اینان قهرمانان زمانند و همه آنها خود را در آثار او باز می ارتقا و ستایش خود را در آنها می خاندند. خود را مرهون او میدانستند و نام او را بر زبان می‌راندند در جوانی از آنجا که از روزگار ناملایم دیده بود خوشونتهای از او سر زده بود دچار چهار لغزشهایی گشته رسوایی به بار آورده بود و در رفتار و گفتارش از حدود ادب و متانت خارج شده بود ولی بل شعن خیش یافته بود که به حکمش چنان که او خود مدعی بود هر صاحب قریهی را میل و کششی هست بلکه میتوان گفت تمام رشد و تکاملش است، آگاهانه و سرسختانه که همه موانع تردید و تنز را عقب میزند تا شعن خیش بیاد برای توده طبقه متوسط، تنها تصویر زنده محسوس بدون جهت فکری لذت بخش است. ولی شور بیچون و چرای جوانان تنها در پی جازبه دشواری های درون است. و درون آشنباخ دشوار بود. و بیچون و چرا، همچون ذهن هر جوانی، او خود را وخفه هنر کرده بود. و تا توانسته بود از معرفت بهره جسته بود بعض عذر افشانده بود اسرار هویدا هو کرده بود قریحه را بدنام کرده بود به هنر خیانت کرده بود آری همچنان که آثار هنریش هنر دوستان را قرق لذت کرده بود آنها را به وجد آورده روح بخشیده بود او این هنرمند جوانان بیست سالگان را با نیش خندهایش درباره ماهیت مشکوک هنر و هنرمند مجذوب و مسحور کرده بود ولی چونین می نماید که جان والا و کوشا نسبت به هیچ چیز بهتر و سریعتر حساسیت خود را از دست نمی دهد که نسبت به تعم تند و تلخ مر و به یقین استوارترین عزم جوانان در برابر عمق تصمیم مردی که به استادی رسیده هیچ است تصمیم به نفی دانایی و مخالفت با آن با سر بالا گرفته از آن درگذشتن تا هر کجا که اصولاً ممکن باشد جلوه اراده عمل احساس و حتی شور را به کمترین حدی گرفت از حرارت انداختشان و حتی از آنها سلب اعتبار کرد چگونه میتوان داستان معروف بخت برگشته را جز به عنوان نشانه انزجار نسبت به توجه این دوره به روانکاوی تلقی کرد با نمایش این گرایش ناپسند در چهره قهرمان نااستوارش این ابله فریبکار که برای خود از این راه سرنوشت اسفباری فراهم آورد که زن خود را از سر ناتوانی گرایش به فساد و ضعف اراده به آغوش جوانکی تازه قف کند به این گمان که عمق روح اجازه دست زدن به هر عملی را میدهد. کلام پرآب که در اینجا با آن دست رد به سینه ی آن چه مردود بود زده میشد روگردانی از دودلی های اخلاقی از هر گونه هواخواهی از فساد و تباهی را اعلام می کرد. مخالفت با این سخن سست و ترح آمیز را که همه چیز را در کردن، همه چیز را بخشودن است، و خلاصه آنچه چه اینجا راهش هموار می و در حال تکوین بود همان معجزه زادن دوباره ناوابستگی بود که اندکی بعد نویسنده در دیالوگی صریحا و با تأکیدی اسرارآمیز به آن باز میگردد. چه رابطه های غریبی یعنی آن تقویت بیش از اندازه حس زیبایی که در همین زمان های آن در صورت پردازی او به چشم می‌خورد نتیجه معنوی این تولد دوباره این شعن و وقار تازه نبود آن پاکی سادگی و یک نواختی والایی که از این پس آثار او را جلوی استادانه میبخشید تلاش مسممانی که می‌خواست آنها را در ردیف آثار استادانه ادب قرار دهد ولی اراده سرسختانه ای که به دور از دانایی باشد مگر این از سوی دیگر باز ساده نگری نیست یکسان سازی اخلاقی جهان و روح آدمی که در جهت پلیدی است چون به سود آن ناممکن و نامجازه است تمام می شود و مگر صورت پردازی چهره ای دوگانه ندارد اخلاقی از یک سو چون نتیجه و بیانگر خیشتنداری است و نااخلاقی حتی ضد اخلاقی از آنجا که در نهادش بی‌اعتنایی نسبت به اخلاق نهفته است و اساساً میکوشد اخلاقیات را تحت سیطره غرورآمیز و نامحدود خود درآورد به هر تقدیر هر تکاملی راه خود را میرود و چگونه ممکن است راهی که از علاقه و اعتماد اقشار مردم آغاز می شود به گونه دیگری پیش نرود تا آنکه بدون درخشش نام و انتظاراتی که در پی دارد صورت می گیرد تنها کولیان همیشه در به در بند که از این همه قهقه تمسخر سر میدهند چون هنرمندی بزرگ از حالت سر به هوایی پیش از بلوغ سربالند کند تا شأن جان و خرد را دریابد و آداب والای خلوت به جای آورد خلوتی پر از درد و رنج محرومیت و نبرد استقلال که قدرت و افتخار را به او ارزانی کرده است درسانی، چه لذتی است در تلاش سرسختانه ی هنرمند برای خودیابی به مرور نشانه‌های رفتاری رسمی و مربیانه در آثار گوستاو آشنباخ ظاهر می‌شد. در دوران اخیرش از نوآوری‌های های واسطه و باز های قریب پرهیز می‌کرد. حالتی نمونه‌وار و سرمشق گونه به خود می‌گرفت و حتی می‌خواست با آوردن ترکیبات و مزامین تکراری پاس پاسدارنده میراس به خود گیرد و همان گونه که درباره لوئی چهاردهم هم, هم آمده در زبان و بیان خود از کلمات و ترکیبات آمیانه دوری میجاست در همین زمان بود که مسئولان آموزش قطعات گذیدهی از آثار او را برای کتب قرائت مدارس در نظر گرفتند و چون فرمان روای یکی از مناطق آلمان که تازه به تخت نشسته بود به مناسبت پنجاهمین سال تولد نویسنده فریدریش او را اشرافیت بخشید. آن را پذیرفت که این با روحش سازگار بود. در همان آغاز پس از چند سال در بدری و چندین اقامت آزمایشی در مکانهای مختلف مونیخ را به عنوان اقامتگاه دائمی خود برگزید و با احترام آنجا به سر برد احترامی همگانی که تنها در مواردی نادر نصیب صاحبان قریحه می شود. ازدواجی که در جوانی با دختری از خانواده ای با علم و فرهنگ بسته شد پس از مهلت کوتاه خوشبختی با مرگ زن از هم است. از آن ازدواج او را دختری ماند که خود بعدا صاحب همسر و خانواده شد و هرگز او را پسری نبود. گستاف فون آشنباخ با قدی کوتاه از حد متوسط مردی بود سبز رو با صورتی که همواره اصلاح شده بود سرش برای قد و قامت ظریفش اندکی بزرگ مینمود موهایش که به عقب شانه میزد و فرق توناکی داشت با شقیقه های پر و شدیدن سفید شده پیشانی بلند و پرچینش را همچون قابی در میان گرفته بود دماغگیر عینک طلاییش اینکی با شیشه های بدون قاب، در گودی زریف و فشرده بالای بینیش فرو شده بود. لب و دهان بزرگش گاه وارفته و گاه ناگهان باریک و کشیده به نظر می آمد. گونه ها لاغر و چین خورده بود و چانه خوشتراشش فرو رفتگی می داشت. چنان مینمود نمود که این سر غالبا به یک سو شده شده سرنوشت‌های بزرگی را از فراز خود گذرانده و با این همه این هنر بود که در اینجا عهدهدار دار کار شکل آفرینی شده بود که معمولا از زندگی سخت و پر از نشیب و فراز برمیآید پشت این پیشانی پاسخ‌های تکان دهنده در گفتگو با پادشاه درباره جنگ پدید آمد این چشمان خسته با نگاهشان از عمق خود و از پشت شیشه های عینک دوزخ بیمارستان های صحرایی جنگ هفت ساله را نظاره کرده بودند از دید شخصی هم که بنگریم هنر به مصابه زندگی ارتقا یافته است که سعادتش عمیق است و تر فرو می این خدایی است که در رخسار بندش نشانه هایی از ماجراجویی های فکری و خیالی فرو می کند. و با همه خاموشی سام اوار زندگی ظاهری شخصی را به مرور بدادت می کند و مشکل بسند و از فرد کانچکابی چنان خستگی به اعصاب می بخشد که یک زندگی با علایق و لذات به دور از اعتدال هم به سختی فراهم